باز هم صدای گفتگوی ننه بگم رشته تخیلاتش را پاره کرد. فکر نمی کرد چه کسی دیر وقت آمده و چه کاری دارد. به این دید و بازدیدهای شبانه عادت داشت. دخترهای همسن دخترش، جوانهای کوچکتر از او، کارگران جا افتاده. آدمهایی که او آنها را از روی پروندهشان می شناخت، به این خانه زیاد می آمدند، می صحبت می کردند. چیز مینوشتند ماشین تحریر همراه خود می‌آوردند پلکپی می‌کردند گفتارهای رادیو را می‌گرفتند بحث می‌کردند درباره سیاست روز، درباره ادبیات درباره آثار صادق هدایت جدل می‌کردند گاهی یکی می‌گفت و دیگران می‌شنیدند زمانی می می‌شد برخی پیغام می‌آوردند ادعی می‌آمدند که از او توسط شیرین توصیه بگیرند تا کارشان با اعمال نفوذ او در دادگستری شهربانی و ادارات دیگر درست شود مهمانی میکردند. کردندند صفحهگرامافون میگذاشتند سابقا که ذاکری را نگرفته بودند جلسات آنس تشکیل میدادند میخندیدند میرقصیدند برخی از آنها دانشجویان هم دوره شیرین بودند با برخی دیگر شیرین از دبیرستان آشنا بود پرونده همه را خوانده بود سرکانتر محل همه اینها را به او معرفی کرده بود دنبال همه آنها آدم گذاشته بودند. بالاخره زاکری که نامه دوم را میخواست از لایدر بیاندازد و مأمورین آگاهی گرفتندش یکی از همین بود. میدانست که یاران دارن دخترش را بدبخت میکنند. ولی با آنها از توی خانه نمیشد در افتاد. بایستی از خارج ریشهشان را کند. به علاوه او جرأت نداشت به دخترش بگوید با این آدمها معاشرت نکند. اگر میگفت حادثه ای که امروز اتفاق افتاده یک سال پیش اتفاق میافتاد. دخترش میگذاشت و میرفت. گذشته از این، کاراگاهی معتقد بود که نویسنده این نامه‌ها بایستی یکی از همین دوستان و معاشرین شیرین باشد. شاید هم به همین دلیل بساط آنها را بر هم نمیزد. وقتی خوب تصورش را کرد که چقدر در این قصد پستی نهفته است، چندشش شد. اما چون این چیزی ممکن نیست. نویسنده این نامه‌ها باید کسی باشد که از جزئیات زندگی او با خبر است. و تمام حوادث زندگی او را به تفصیل میداند و الا این بچه ها از کجا از مرگ مادر شیرین خبر داشتند تنها چیزی که خود شیرین خبر داشت همین بود که مادرش مرده است ناگهان از روی صندلی بلند شد به دردی که سینه را شکنجه میداد توجهی نکرد یک دستش را رو روی صورتش گذاشت با دست دیگرش روی میز خم شد چشم تیزش را به نامهایی که روی میز ولو بود دو. دنبال نامه‌ای می‌گشت که در آن به اسرار مرگ زن جوانش اشاره شده بود. دلش نمی‌خواست صورت خود را در این حال ببیند. از کنار میز رد شد. باز رفت رو به پنجره. هنوز صدای گفتگو می‌آمد. چراغ اتاق شیرین روشن بود. مستی که ترس برش داشت. برگشت به میز. مبادا شیرین به خانه آمده باشد. همین دشوار بود. یک عمر به خاطر رفاه این دختر رنج برده بود. چه ناملایماتی تحمل کرده از چه ناکس ها حرف شنیده بود حالا که با یک پا تمه گوری شده حالا می‌ترسد دخترش را ملاقات کند میدانست که امشب زشتتر از همیشه است نه برای خاطر درد شدیدی که حسابش میداد، و داشت او را به مرگ نزدیک می‌کرد و از پا در می‌آورد بلکه برای اینکه امشب از وقاحت رفتار گذشته‌اش آگاهی یافته بلاخره تنها موجودی که از زشتی او بیزا نبود، نتوانست با او همبام باشد، حس می کرد، یقین داشت، بدون اینکه خود را در آی دیده باشد، یقین داشت که زشتتر از همیشه است، نمی خواست خودش را، باطنش را، به دخترش در این روزها و شاید چه کسی می در این ساعتهای آخر عمر نشان بدهد، تا به حال خیال می کرد با دخترش صدیق است، معلوم شد که آنجا هم نقاب زده است بگذار شیرین خاطره خوشی از او داشته باشد آیا خاطره خوشی از او داشت؟ پس چرا از این خانه رفت؟ آیا واقعا با شیرین یک دل و یک رنگ بود؟ اما شاید نویسنده این نام حق داشت نویسنده این نام نوشته بود که دیوان وارنامه ها را ورق زد و آن را که مورد نظرش بود آخرین نامه را پیدا کرد نوشته بود آقای قاضی، شما خودتان خوب می دانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید. آن وقت نویسنده وعده داده بود که بقیه مطلب را در نامه بعد توضیح بدهد. شیرین دیگر منتظر این نامه نشد. بعد هم، وقتی پدرش، پدری که خیال می‌کرد تنها با دخترش یک دل و یک رنگ است، به او گفت که نویسنده ای نام این نامه این مطالب را اقلن همین یک مطلب را دروغ گفته است، باور نکرد و از خانه بیرون رفت شاید شیرین دیگر طاقت شنیدن این حقیقت را نداشت آه، نامه ها دخترش را ازش گرفت این یاران دخترش را فریب دادند مگر واقعا قاتل او بود این یکی دیگر راست نیست درد داشت او را از پادر می آورد روی صندلی افتاد گوی سر نیسه‌ی سپر در قلبش فرو می‌بردند و سپس میپیچاندند. سرش را گذاش روی میز شنیده بود که وقتی آدم می‌خواهد بمیرد میتواند تمام گذشته‌اش را مرور کند خاطره‌ی گذشته زمانی که در شیراز با اسپورس بود در نظرش چلفه‌گر شد عجله داشت جواب بعضی پرسش‌های رو که از خودش می‌کرد نمی‌شنید دلش میخواست تا مرده از خودش بازپرسی کند. درباره خودش قضاوت کند. آیا در واقع قاتل بازپرس جوان بود یا صاحب منصب و قلبی که هم خودش را با یک پارابولام زد و هم زن جوان را؟ جواب دشوار بود. چقدر اینجور جور تک و تنها، بیکس و بی‌مونس مردن سخت است. هیچ کس در خانه نبود. جز ننه ننبگم آمد دم در اتاق لای در را باز کرد سرمایه برنده ای از لابلایه پرده های زخیم گرمای اتاق را شکافت از هوای تازه خوشش آمد و جانی گرفت آقا نگذاش ننبگم حرفش را بزند چونان به او تشر زد که خودش از تنین صدایش وحشت کرد این صدای خودش نبود این صدای چوب شکسته بود صدای چینی ترک برداشته بود پشیمان شد که چرا در چنین این موقعی این زن بدبخت را از خود میرنجاند اما نمی کسی مزاهمه او بشود در محکمه هم کسی حق نداشت مزاحم او بشود میخواست خودش را محاکمه کند آیا این جمله نویسنده راسته است؟ آقای قاضی شما خودتان خوب می دانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید نه این راست نیست کاش نویسنده ای نام خودش تمام داستان را نقد می کرد. قرار بود که در نامه بعدی توضیح بدهد. هر هفته یک نامه می رسید. اما شیرین منتظر نشد. رفت. حالا او می خواست خودش از خودش بازپرسی کند. قاضی پیرمرد میخواست می خواست از بازپرس جوانی که در شیراز از بل بلی می خوند. استنتاق کند. اوه بازپرسی چه کار دشواری است. تا به حال برای او بازپرسی فنی بود. اما حالا می فهمید برای کسی که باید استنتاق پس بدهد برای کسی که گناهی کرده و با همه ی قواه میکوشد آن را پنهان کند چه زجری است اما او که تا به حال از استنتاق دیگران لذت میبرد هرگز متوجه زجری که متهم میکشید نشده بود با چه جسارتی یار محمد استنتاق پس میداد شاید دلیلش این بود که مردک بیگناه بوده است پس اگر خودش هم بیگناه است چرا محکم به پرسش های خودش جواب نمیدهد قاتل زن جوانش مادر شیرین که سال پیش اینن شکل حالای دخترش بود. که بود؟ این را همه اهل شیراز می دانستند. صاحب منصب قسیل قلبی همزن جوان او را کشت و هم یک تیر به پهلوی خودش زد. این را همه کس میدانست؟ این چیزها گفتن نداشت. مردم میدانستند که در دادگستری شیراز بازپرس جوانی از تهران آمده بود و حاجی شکور دختر خودش را به او داده بود. همه اهل شهر تعجب کرده بودند که چرا حاجی شکور دخترش را به آدمی به این بیریختی که هیچ چیز هم ندارد میخواهد بدهد. در صورتی که نایب فرهاد که پسر یکی از سرشناسان ناسان محل بود دائما زاخسی دختر دخره شکور را چوب میزد. آخرش هم کار خود را کرد. روز روشن، نزدیکی های غروب موقعی که زنک از حمام برمیگشت نایب مزاحم شد. دخترک داد و فریات را انداخت. آن وقت، نایه پارابلامش را در آورد. اول یک تیر به سینه زن جوان بیست و دو ساده زد و یک تیر هم به پهلوی خودش. بهار بود. هنوز شبها نسیم نمناک میوزید. آن هم بهار شیراز. داشت شراب میخوردند و زیر قرآن و سیاست میرفتند. همه چیز آن شهر به خاطرش بود. زنهای روبندهی که چشمهای مشکی خود را نشان میدادند به چه افتزایی چادر از سرشان برداشتند یکی از همین روزها خبر کشته شدن دختر حاجی شکور شیرازی مثل برق در شهر پخش شد چون که داستان عشق صاحب منصب جوان را با دختر حاجی خوشگذرانهای شیرازی شنیده بودند همه صاحب منصب را مسخره میکردند میگفتند که حاجی شوهر خوشگلی زیباتر از نای فرهاد برای دخترش پیدا کرده آن وقت میخندیدند غروب بود که লাশ زن 22 ساله را به خانه آوردند دکتر امیرخان آمد آن وقت پزشک کنسولخانه بود نیم ساعت نگذشت که اهل محل خودشان را آوردند وقتی نشرا به خانه حمل کردند دست زنک گرم بود اما تا دکتر امیرخان سر رسید دیگر کار از کار گذشته بود اینها را همه میدانستند. منتها اینها را که از خودش نمیپرسید مطالبی را میخواست که یک باز پرس کار کارکشته برای ارائه مهارت و تیزهوشی خود لازم دارد قاضی پیرمرد. که یک پایش دم گور بود و دخترش ترکش گفته بود میخواست از بازپرس جوان سرسری استنتاق کند اما بازپرس جوان تندر در نمی‌داد قاضی پیر هم نمیخواست بلند فکر کند قیافه دخترش قیافه شیرین در برابر چشمانش پدیدار شد همان موقعی که بهش گفت نه این یکی دیگر راست نیست در چشمان شیرین دید که حرفش را باور نکرده است حالا میخواست از خودش بازپرسی کند اما راستی بازپرسی و تحقیقاتی هم لازم بود محکوم نبود خود غازی پیر اگر چنین این به دستش میدادند و توصیه وکیل و وزیر و رئیس ستاد و رئیس شهربانی و متنفظی در کار نبود محکوم نمیکرد. نویسنده نام حق داشته چطور همه شهر می دانستن که نایه فرهاد عاشق دختر حاجی شکور است و او که بازپرس بود، او که با حاجی شکور سر و سر داشت و هر روز و هر شب نهار و شام در خانه حاجی بود و با دوستان و کس و کار و او آشنایی به هم زده بود، چطور او نمیدانست؟ به همه این پرسشها ها جواب داد، حاجی شکور که نمیتوانست دخترش را به ورگرده هر زیبه بدهد؟ او بازپرس دادگستری بود، آن هم بازپرس با با قدرت؟ همه می دانستند که از دستش کار برمی آید و اگر پا میداد برای رئیس دادگستری شیراز هم تره خورد نمی کرد. بسیار خوب، حاجی شکور که دخترش را به یک نایب اول نمیداد و می گفت دهنش بوی شیر می داد. چگونه حاضر شد به او که یک بازپرس رتبه سه بود بدهد. مگر آن وقت که تازه دو سه سال بود وارد دستگاه عدلیه شده بود چیزی داشت؟ در صورتی که نایب فرهاد را مردم شیراز می شناختند. در این شهر کس و کار داشت خانه اش را مردم دیده بودند دو نفر آدم حسابی به خانه اش رفته بودند اما خانه بازپرس کجا بود؟ یک حیات فسقلی در محله کلم اجاره شیره کرده بود از تجار شیراز هم که با تهران معامله داشتند هیچ کس او را نمی پس به چه دلیل حاجی دخترش را به او داد؟ به این پرسشان نمیخواست جواب بدهد لرزه به دنش چه آشنایی با حاجی شکور داشت. چرا هر روز نهار و شام را با حاجی با هم بودند. چه قز زیبا بود. چه ایام راحتی. توی عرصه بزرگ حاجی می نشستند. تیرهای نقاشی شده صخف آن، شیشه های رنگی، درخت های نارنج که اول بهار عطر مست کننده ای می افشند. آب حوز به رنگ آبی سیر کاشی های سبز پاشویه آن همه اینها به خاطرش هست در اتاق های روبرو زن حاجی و امه خانم مینشستند. کیابیای خانه همین امه خانم بود او میگفت با بازپرس جوان باید گرم گرفت او بود که باسپورس را به فکر خاستگاری دختر حاجی انداخت دختر حاجی چادر آبی کبوتر رنگ سرش میکرد. کرد کفش های پاشن بلند پایش بود و گاهی از اتاقی بیرون می آمد و با اتاق دیگر می رفت. اما بازپرس اجازه نمیداد که قاضی پیر در این تخیلات لطیف غرق شود. قیافه تزکردهنده شیرین باز نمایان می مادرم را که کشته؟ نویسنده نام است که قاتل واقعی خود اوست. این را باید فهمید. خودش از خودش استنتاج می کرد. حالا، میفهمید فهمید که متهم چه زجلی می کشد. مخصوصاً متهمی که میخواهد سری را پنهان دارد. خودش را سوال پیچ کرده بود چطور شد که حاضر شد دخترش را به او که حتماً اگر به زشتی امروز نبوده اعلن زشتتر از نای فرهاد بوده بدهد راستی حاجی شکور چه کاری در ادلیه شیراز داشت بازپرس سابق شیراز می‌بایست این اطلاعات را داشته باشد شاید شیرین هم میدانست. شاید از همین جهت که میدانست حاضر نشد با او در این خانه بماند نویسنده هر هفته اقلاً یک نامه مینوشت اما اکنون که دیگر شیرین در این خانه نیست خواندن نامه ها خیلی دشوار است شیرین در این خانه نباشد و بازم نامه بیاید آه کاش زودتر میارد و زودتر از این زهجر را راحت میشد وقتی احساس میکرد که مجبور است به گناهان ها گذشتش اعتراف کند دلش میخواست که نامه ای وجود داشت. ای کا شیرین، اعلنن از زبان او نمیشنید تعجب در این است که نویسنده نامه از کجا شنیده. از آنچه او میکوشید پنهان کند، هیچ کس جز او و حاجی شکور خبر نداشت. آیا می شود تصور کرد که حاجی به خواهرش بروز داده و عمو خانم برای راضی کردن دختر حاجی به شوهری با بازپرس این سر را فاک ساخته است؟ اگر حاجی به کسی گفته باشد، دیگر سری باقی نمانده و حتما فرهاد هم شنیده است. و ایو نویسنده لعنتی چه می‌خواست است در نامه بعدی بنویسد چگونه میخواست می‌خواست ثابت کند که او قاتل واقعی زنش است کی میدانست که حاجی شکور دخترش را به جای حق و زحمه کار دشواری که باسپورت به نفع حاجی انجام داده که قاضی نمیخواهد اسم رشوه روی آن بگذارد به وی داده است حاجی با شریکش دعوا داشت شریکش مدعی بود که حاجی جعل کرده امضای او را جعل کرده و به نماینده‌ی آنها در تهران فرستاده است حاجی سر این دعوا که آبرویش را داشت می برد، تمام دارایی خودش را گذاشته بود. سابقا حاجی و شریکش هر دو با هم جعل سند می کردند. این دفعه حاجی شکور تنها اقدام کرده بود و از این جهت داشت آبرویش میرفت تمام دارائیش را سر این کار ادلیه گذاشته بود. دیگر هیچ چیز نداشت بدهد، جز دخترش را. نقل داستان زناشوی او وحشدناکتر از واقعیت است آن روز شاید هیچ متوجه نشده بود چه کند دلیل جرم، دلیل اینکه حاجی به شریکش خیانت کرده، دلیل اینکه آیا باید دارایی ای که در تجارتخانه آنها وجود دارد متعلق به هر دوی آنها باشد و دلیل خیانت و بی‌آبرویی همه در پرونده بود. در چند ورق کاغذ و این اوراق در اختیار بازپرس جوان بود. این اوراق را او داد سرای شیراز پیدا کرده بود. او مدارک را از همه جا جمع کرده بود. اقدام کرد که عین نامه حاجی شکور را از طرف حاجی و شریکش از نماینده آنها در تهران گرفتند. آه، چقدر زرنگی به خرش داد. بگذار مردم شیراز بفهمند که باز پرس جوان اگرچه بد ترکیب است، اما با کفایت است. ازش کار برمی آید. زشت است و بیریخت، اما می تواند دختر خوشگل پیدا کند. خوشگل ترین دختر شیراز را بگیرد. دختر حاجی، جایزه این موفقیت بود حالا دیگر هر روز دختر حاجی از پشت شیشه سبز عرصی به او نگاه می کند تمام خانواده میدانست که هستی و نیستی آنها در دست اوست در دست باز پر شیراز است اگر او چند و رخ کاغذ را از پرونده بیاورد، از کجا می توان ثابت کرد که حاجی شکور آدم به این بدی است عرق کرد عرق سردی از زیر موهای پشت گردنش روی ستون فقراتش جاری شد. با سینهش در هم فشرده شد. سرش را پایین آورد. آن ساعت. هنگامی که اوراق را از لایه پرونده در آورد و در جیب گذاشت و به خانه حاجی شکور برد و به او داد تا موقعی که برای نخستین بار صورت رنگ پریده و لبهای لرزان دخترک را دید همه در یک لحظه اما لحظه وحشتناکی که نمی شود فراموشش کرد، از جلوی چشمش گذشت سرش را انداخ روی میز دم در صدای پای کسی که برف یخزده را خرد می کرد شنیده می شود. صدای گفتگوی ننه بگم از پشت در شنیده می شد نکند کسی می خواهد وارد اتاق شود هیچ کس تا به حال چنین جرأتی نکرده بود در حضور او کسی حق نداشت وارد این اتاق شود می خواست بلند شود و اعتراض کند. اما دیگر طاقت نداشت، از خودش اختیاری نداشت، تمام بدنش تیر می کشید، گویی بازان آن های سپره را دارند توی ماهیچه فرو می کنند و می چرخانند. حس می کرد که روزهای آخر عمرش دارد نزدیک می شود، کاش شیرین بود، شاید به خانه آمده، شاید دلش تاغت نیاورده و به خانه برگشته و اوس که می خواهد به اتاقش بیاید، که آخرین نامه رسیده بود وقتی این جامه را آقای خاصی شما خودتان میدانید که قاتل حقیقی زن جوانتان شما هستید شیرین خواند و او در جواب گفت این یکی دیگر راست نیست از چشمان دخترش معلوم بود که حرف او را باور نکرده است دلش میخواست به او حالی کند که او قاتل مادرش نبوده است حالا اگر راستی شیرین آمده باشد حالا که او در از زجر میکشد و طاقت حرف زدن ندارد چگونه میتواند به او بگوید که نه آن نایب قصی و قرب مادرش را روز روشن موقعی که از حمام به خانه برمیگشته کشته است اما اگر شیرین به فرصت چرا مادرم را که با نایب فرهاد سر و سری داشت به زنی گرفتی چرا همه مردم شهر از داستان معاشقه این دو خبر بودند و او هیچ اطلاعی نداشت چرا اگر اطلاعی داشت باز هم به عروسی با چنین دختری تندر داد چه به ما بین او و حاجی شکر بود چطور اسناد پرونده ی حاجی شکور گم شد و چطور او را تبرئه کردند به این سوالات چه جواب بدهد آیا همه اینها را میشود دلیل قتل دانست و همانطوری که نویسنده ی نفرین شده نوشته او را قاتل حقیقی خواند یک بازپرس آزموده خیلی دلیل نمی توانست پیدا کند و تقصیر قتل زن جوان را به گردن او ثابت کند خود قاضی هم بازپرس کار ای بود از خیلی ها اقرار گرفته بود چطور می توانست از خودش اقرار بگیرد اگر هیچکس نمیدانست خودش با خبر بود که مادر شیرین این دختر شاداب در خانه او دل مرده شد میدانست که تمام سه سالی که با هم زندگی کردند خنده به لبش نیامد ابتدا خیال میکرد که زنش است اما وقتی شیرین به دنیا آمد دید نه با بچش میتواند بخندد شوخی کند، بچهش رو ناز و نوازش کند، لوسش کند. مادر شیرین اینن مثل قنچه گل سرخی بود که شده زده باشد. قنچه هست تو باز نمی شود. چطور نمی فهمید؟ چطور اون نمیدانست که این دختر جوان که آبروی پدرش را خریده و به زنی با مرد بیریختی چون او تندر داده از صورت منحوس شوهرش بیزار است؟ هیچ وقت با هم دعوا نکردند. هرگز زنش غر نکرد که به خانه پدرش برود. چقدر لباس و زر و زینت برایش خرید. اما دخترک پریده هرگز ذوق نکرد. وقتی بهش پیشنهاد کرد که به تهران ببردش و آنجا برایش خانه بخرد، گویی داشتن جانش را میگرفتند. بهانه‌اش این بود که جدایی از پدر و عمویش را طاقت نمیآورد. راز میگو. شاید مخصودش این بود که فراغ نایب را تا قد نمی آورد. بود. هرچه چه می خواست می کرد. حاضر بود، هفته ها در خانه بنشیند و هیچ جا نرود. فقط روزی که میخواست حمام برود، سردماغ بود. عجبتر آنکه روز به روز هم بدتر می‌شد. به طوری که زندگی با این زن دل مرده برای بازپرس جوانی که در تمام شیراز سرشناس شده بود و میخواست با مردم با رؤسای ادارات و زنهای آنها آمد و شد کند، دیگر داشته هم ناپذیر می شد. او می خواست بگوید که اگر چه زشت است، زن خوشگل دارد. این نکته در روحیه مخالفین او تاثیر داشت. هفته یک روز دوره قمار در خانهش بود. همه از رئیس عدلیه تا نایبهای شهربانی می آمدند و تا صبح می نشستند و بازی می کردند. می ریختند و می پاشیدند و او زن جوان بیست و دو ساله همین جور گوشه ای اتاق صندوق خانه کس می کرد. یا روی زمین دراز میکشید و پاهایش را به دیوار تکیه می میداد و نمی تا همه نروند بخوابد. دائما وحشت داشت. مثل اینکه کسی همه جا او را تعقیب می کند. از بعضی جهات چقدر شبیه به شیرین بود. شیرین امروز خیلی مانند مادرش است. او هم رنگ خوش و باز را دوست ندارد. کم حرف میزند و تمام تثراتش در چشمانش نافته است. خیره به چیزی مینגרد مثل اینکه چیزی میخواهد که وصول آن میسر نیست شیرین هم همیشه از خودش وحشت داشت گویی کسی تعقیبش میکند مادرش وقتی تنها بود روی زمین دراز میکشید و پاهایش را به دیوار تکیه میداد شیرین روی صندلی راحت مینشست و کتاب میخواند صفحه گرامافون گوش میداد پای رادیو خودش را مشغول میکرد تا دو, دو سال پیش که سر این های لعنتی باز نشده بود تنها بود گاهی گدا ها را توی خانه می آورد و یا قابلمه درست میکرد و به خانهشان میرفت. برای همین جور آدم‌ها گاهی از دبیرستان و یا دانشگاه میآمد پیش او به دادگستری آنجا از او توصیه می‌گرفت و به خودشان میداد، و یا اینکه عقب کارشان میرفت تا به نتیجه برسد با کلفت و نوکر عخت بود ابایی نداشت از اینکه با آنها بنشیند و درد دلشان را گوش بدهد نوینن به را آورده بود توی خانه پسر روز اول که آمد اینجا همیشه مافش آویزان بود. حالا او را به دبستان فرستاده بود. تیمارش می داشت. پاک نگه میاشتش. شبهاگاهی درسهایش را وارسی میکرد. توی خانه همیشه چند نفر دیگر هم بودند. پسران هم دوره او در دانشکده همگاهی میآدند. آن وقت خادث زاکری اتفاق افتاد. موقعی که میخواست نام رازلایی در توی خانه بیاندازد مأمورین کاراگاهی که پشت در نشسته بودند مچش را گرفتند. زاکری با آنها کلاویز شد. دو نفری از پسش بر نیامدند. اما کتش را از تنش رو بودند. زاکری فرار کرد. از روی محتویات کیفش هویت او را یافتند. فوری به خانه اش رفتند. خط نامه را با خط کاغسایی که در خانه او یافتند تطبیق کردند. درست نبود. خط خودش نبود. یک ماه تمام عقب زاکری گشتند. هیچ جا او را پیدا نکردند تا اینکه روزی خودش را به مدعی العموم معرفی کرد. تو هفته طول نکشید که باز سر نام نویسی باز شد. اما موقع شیرین از او خواهش کرد که اعمال نفوذ کند تا قرار توقیف تبدیل به وچال کفاله شود. با چه علاقی شیرین در کار این زاکری دخالت کرد؟ چه توجهی به این زاکری داشت؟ قاضی ابتدا خیال می‌کرد که عاشق پسرک شده. وقتی از شیرین پرسید که این جوانک را از کجا شناسی گفت در دانشگاه معمولین پلیس دنبالش آمده بودند. آنجا ادعای از دانشجویان با خود عهد کردند که چه از دستشان برمیآید به نفع او بکنند. شیرین هم و وظیفه خودش را انجام بدهد. طبیعی که وقتی صحبت از کمک به زاکری شد همه متوجه شیرین شدند. زیرا حادثه در خانه او اتفاق افتاده بود و قاضی، پدر شیرین، ترین مرد دادگستری بود که همه این کارها را زیر نظر داشت. شیرین میخواست قرار توقیف کفالت تبدیل شود. چطور او می توانست خواهش دخترش را رد کند؟ وقتی باز هم نام نویسی شروع شد، رضایت داد. بار دیگر نامه ها عوض شده بود. انشا هم عوض شده بود. معلوم بود که کار یک نفر نیست. یک پسر بچه 18-19 ساله نمی توانست از گذشته او آنقدر باخبر باشد. شاید نویسنده نامه راستی کس دیگری بود. از این معمورین آگاهی هر چه بگویی برمیآید؟ برای خود شیرینی جوانکی را که می‌خواست پیش شیرین بیاید گرفته بودند و می‌خواستند تقصیر را به گردن او ثابت کنند با وجود این برای پدر پیر مسلم بود که علاقه شیرین به زاکری بیش از حد تصمیمی است که چند نفر دانشجو در دانشکده گرفتند شیرین هر روز صبح می‌آمد و گونه های پدرش را میبوسید و از او قول می‌گرفت که کار زاکری را تمام کند بالاخره رضایت داد چند روز بعد ظاکری خودش آمد پیش مدعیان عموم. پسرک را به او نشان دادند. از او خوشش آمد. خوشش آمد که شیرین با چنین جوانی سر و پیدا کرده. چند روزی بیشتر در زندان نماند. در بازپرسی اقرار نکرد. گفت نامه را از دست او نگرفتند. به خط او هم نیست. به علاوه چیزی هم در نامه نیست. بازپرس هم مشکوک بود. گذشته از این در همون روزهایی که زاکری در زندان بود، نامه ای رسید. آخ، همان دنباله نامه یار محمد زغال فروش. یکی از دقیق ترین یار محمد را دوباره زنده کرده. اما شیرین خوشحال بود. میدانست که زاکری را مرخص خواهند کرد. چه خاطرات خوشی می داشته باشد. چه خوب بود اگر دخترش با یکی از همین بچه ها می‌کرد. چه خوب بود اگر هر دوشان پیش او بودند؟ برایشان خانه میساخت؟ زندگیشان را ترتیب میداد. آنطور که آنها دلشان میخواست برایشان درست میکرد. شبهای جمعه می بای سیحتما پیش او بیایند. ازشان پذیرایی میکرد. بعد بچه دار میشدند با نوش بچه شیرین بازی میکرد. و را پیش خودش نگه میاشت. نوش هم مثل دخترش از زشتی او در عذاب نمی بود. بچه شیرین هم دست می انداخت گردنش و می گفت بابا جون دارم. صدای گریه و صدای خندش را از اتاق دور میشنید شنید. نصف شب بلند میشد شد. دایه را بیدار می کرد. به جای همه اینها دخترش تنها موجودی که از صورت کریه او رنج نمیبرد رفته بود. او را گذاشته و رفته بود. دیگر نمیخواست به این خانه برگردد. فوداش میمرد و هیچکس در خانه نبود. جز ننه این پیر سگ که از خودش هم زشتر است.